بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین السلام و السلام على سیدنا و نبینا محمد و على آله التيبين الطاهرين المعصومین لا ما بقیت الله فی الارزین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 السلام على الحسن بن علي الزكي الأسكري السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسین و علي علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و اصحاب الحسین قال الحسین عليه السلام انا ادعوكم الى كتاب الله و سنت نبیه فا قد امیتت و قد أهيت. فإن ان تسمع و غولی و توتی و امری الى سبیل الرشاد. با توجه به تبیین قولی و فعلی وجود مقدس ابی عبدالله الحسین علیه السلام و یارانش با توجه به واقعی کربلا و واقعه آشورا در رابطه با تبیین موانع تحقق هدف انبیاء به اینجا رسیدیم که اگر انبیا از طرف خدا مبعوث شدهاند تا ما ها را به کمالی که خدای عالم میپذیرد برسانند به اون سعادتی که خدا سعادت میداند ما را به اون نایل کنند آیا در مرحله اول ماها به عنوان پیروان مکتب انبیا معتقدیم که اون هدف تحقق یافته است به صورت ایدئال و کامل و اجتماعی خیر خب علتی که تحقق نیافته است چیست عرض کردم از نظر کسانی که به وحی معتقد نیستن و دین را افیون ملت ها می دانن، نگرشی ضد دینی دارند بحث دیگری است که باید در یک فرصت دیگری به او پرداخت و ادله معتقدین به دین و وحی را ارائه کرد اما از نظر کسانی که معتقد به وحی هستند و پذیرفته‌اند که خدای عالم انبیا را برای هدایت ما قرار داده و قرآن کریم را به عنوان آخرین کتاب الهی برای هدایت ما فرستاده و این آیه شریف قرآن را ان القرآن القران يهدي للتي هي را هم میپذیرند اما در اینجا باز هم اختلاف نظرهایی وجود دارد که خود این اختلاف نظر و این نحفه از معرفت باعث عدم تحقق هدف انبیا میشود شود یکی از اون نظریات که در طول این چند شب بررسی می کنیم این بود و هست از صدر اسلام به شکلی و در دوران ما هم به صوری که وحی اگر حق است و اگر از طرف پروردگار عالم هزمین سعادت انسان را نموده تنها در یک محدوده مختصر زندگی فردی است توقع سعادت اجتماعی از وعی توقع غلطی است خب اگر این نظر را پذیرفتیم اصلا مبنای شناخت هدف انبیاء و نحوه تحقق بحث دیگری پیدا می کند. حالا نظر دوم و سوم به اندازه ای که وقت اجازه بده ببینیم چقدر میتونیم وارد بشیم اما در این نظر اول ما دیدیم هم بر مبنای درون دین به این حقیقت نگریستن یعنی به آیات قرآن کریم به روایات معصومین آیا ما کوچکترین دلیلی بر تایید این حرف از درون دین می توانیم پیدا کنیم موارد بسیاری را که گوشه هایی از آن را نشون دادیم و با هم بحث کردیم درست عکس این را بیان می کرد حکم آن خداست حکم مطلق است وحی همه شعون شما را قرار اداره بکنه و مسائل مفصلی که در این رابطه ما از متن قرآن و روایات دیدیم اما اگر به صورت بروندینی بخوایم نگاه کنیم نگارش فلسفی نگارش کلامی ادله عقلی، مباحث اجتماعی و سیاسی و حتی شهود عرفانی عرفا در طول تاریخ مطالبی را برای ما بیان داشته که اگر انسان دقت کند، گاهی به صورت تصریح با باور عالم ملکوت و سیطره ملکوت بر ملک لازمه سعادت ملک را افزایش از عالم ملکوت و بهرهمندی از آن عالم ذکر اما گاهی که این حرفها را هم حتی معتقد نبودن یا نفذیرفتن ولی تحلیل عقلی اونها نگرش جامعه شناسی اونها بینش سیاسیشون عدله فلسفیشون به گونه ای بوده که به این مطلب بر است من دیشب نمونههایی رو از افلاتون فارابی ملا صدرا سهروردی از غربی ها راسل رسو ارز کردم امشب اجازه بدید بازی نمونه های رو چون وقت اجازه نمیده بیش از امشب به این بحث نمیتوانم بپردازم. چون باید نتیجه گیری کنم حالا انایت بفرمایید یک ابن سینا در کتاب الهیات شفا صفحه 502 تا 507 پنج صفحه توضیحاتی دارد در نگرش فلسفی اجتماعیش فشرده حرفای او در این پنج صفحه این می شود انسان ناگزیر از حیات اجتماعی است خب یه واقعیتی است که ما به عنوان انسان اجتماعی زندگی می کنیم. تنها در یک غار و یا فقط یک خانواده در یک گوشه ای زندگی کردن این برای ما انسانها مطرح نیست قرار جمع اجتماع در کنار هم به صورت زندگی جمعی به سر ببریم و زندگی جمعی ناگزیر از معاملات و ارتباطات است. بازی بحث اجتماعی و فلسفی میکنه در بحث سیاست مدونشون چون توجه دارید حکما حکمت رو تقسیم میکنند به حکمت نظری و حکمت عملی در حکمت نظری وقتی صحبت از الهیات به معنی عام، الهیات به معنی خاص مطرح میشه، در حکمت عملی میان بحث اخلاق، سیاست مدون، مدینه فاضله اینا رو به یک بحث حکمی و فلسفی مطرح میکنند و به اون می‌پردازند. افلاطون بر همین مبنا سه هزار سال قبل اون حرف رو زده بود. لذا ایشون چی میگه؟ میگه انسان که اجتماعی است زندگی جمعیهم ناگزیر از معاملات و ارتباطاته ما باید با هم روابطی داشته باشیم معاملاتی داریم ارتباطاتی داریم بدبستانهایی داریم لذا حقوق مطرح میشه وقتی حقوق مطرح شد تکلیف مطرح شد نیازمند قوانینیم پس باید یک باید و نبایدی برای ما وضع شود و این باید و نباید در رابطه با جامعه حالا کسی که میتواند این باید و نباید را معین کند به تعبیری قانونگذار، گذار وضع و از کننده این امرو ها ابن سینا چی میگه؟ میگه این قانون از طریق معجزه امتیازش را نشون دهد و با نسب خلیفه خود امام واجب و را که مجری قانون باشد بشناساند خیلی سری دارم رد میشم بحث ها داره اینا را باید تو کلاسای درس با حوصله بحث کرد ولی در حدی که به بحث ما بخوره عرض میکنم میگه ما که نظام اجتماعی داریم بالاخره با جامعه باشیم قبول جامعه ام که معاملات داره جامعه ام که ارتباطات داره قبول در معاملات و ارتباطات حقوق و تکلیف مطرح میشه اینم که قبول برای حقوق و تکلیف قوانین لازمه خب این قوانین رو کی وضع کند یک دفعه میاد سراغ این مطلب کسی که از طریق معجزه امتیازش را نشون بدهد دو نکته در این عبارت ابن سینان افته شده عادلیست و ما داریم عنوان یک بحث عقلی مطرح میکنیم نکته اول معجزه چیست؟ معجزه کاریست کسانی که از طرف خدا آمده اند پیغمبر انجام میدن اثبات خدایی بودن اونها را به و چون کار مرتبطه به خداست بقیه از انجام اون آجزند به این جهت بهش میگن معجزه ببینید اصولا هر ادعایی نیازمند دلیل اثباتی است اگر بنده در جمع شما ادعا کنم من یک پزشکیم که می توانم سرطان را مداوا کنم اولین مطلبی که حق شماست این است که از بنده بپرسید دلیلتون برای اثبات این ادعا چیست من باید دلیلی ارائه کنم که مناسب ادعای من باشه حتی اگر دلیل بیارم من الان می توانم یک وزنه سنگینی رو بلند کنم که رکورد جهانی را بشکند میگن چه ربطی به مداوای سرطان داره باید دلیل شما مناسب با اون ادعا باشه انبیا آمدن چه ادعایی کردند گفتن ما از طرف خداییم خب باید این ادعا دلیلی ارائه بدن که ما بتوانیم بپذیریم اینها از طرف خدایند. این دلیل رو میگن معجزه که دیگران از انجامش آجززن. معجزه موجود همیشگی پیامبر اسلام که الان هم همین قاعده رو در کره زمین داره اعمال میکنه بر آن کریمه. میگه من یک انسان امی درس ناخنده در دورانی که جهالت و بربریت بر بشریت حاکم بود در دور ترین و عقب افتاده ترین و جاهل ترین منطقه مثل عربستان و اون زمان آمدم و کتابی ارائه کردم میگم این کتاب مال خداست سخن خداست مطالب خداست این ادعاست خب از کجا باور کنم؟ میگه و این کنتم فی ريب مما نزلنا على عبدنا به صورت من مثله خب نیست یه سوره شما مثلش بیارید چهارده قرن 15 قرن است الان هم در همه عالم این فریاد داره پخش میشه آقا قرآن این همه دارید بر علیه اسلام نیرو صرف میکنید چه جنگ ها که در طول تاریخ بر علیه مسلمین و کوبیدن اسلام شما راه نینداختید؟ خب اگر راست میگید یک سوره به مانند قرآن کریم بیاورید که کوتاهترین نش سوره مبارکه کوسر است به اندازه یک خط خب چرا نمیتوانند؟ و چه نیروهایی که صرف کردند و نتوانستند این بحث بسیار مفصلی است فقط تیترش رو گفتم پس معجزه خاراست خدایی که باید از طرف خدا آنانی که آمده ان انجام بدهند دیگران توان انجام این کار را ندارند حالا اگر کسی معجزه نشونداد دلیل بر این است که من از طرف خدا هستم پس ابن سینا میخواد چی بگه؟ میگه اگر شما بخواید قوانینی برای نظام اجتماعی انسان ها وضع کنید آنانی که با خدا مرتبطن و میتونن ثابت کنن ما با خدا مرتبطیم و از طریق معجزه انتصاب به الله برای اونها و امتیازشون ثابت میشود؟ اونها اولویت دارن و مقدمان و باید سراغ اونها برید این نگرش فلسفی ابن سینا اما بعد از پیغمبر چی قرار تداوم بیابه میگه وقتی پیامبر خلیفه نص میکند یعنی میگه من وقتی از طرف خدام و ما ينتقوا عن الهوا این هو إلا وحیان یوها سخن من بر مبنای هوای نفس نیست من هرچی میگم از طرف اوست اگر او گفته بعد از من علی ابن ابی طالب قرار بگیرد اگر او فرمود علی مع الحق والحق و الحق علی اگر او فرمود من کنتو مولا فهازا علی مولا اگر او فرمود مثل اهل بیتی که مثل سفینه نو من رکبها نجا و من تخلف انها حلد. اگر او فرمود انی تار فی و سقلین کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم سکتم به تزل بعدی ابدا و حاکزا اینا همه دلیل است که اون معجزه حقانیتشو نشون میده و اونایی که بر این مبنا قراره برای شما عمر کنن نه کنن اینا الهیان پس با بودن الهی نوبت به غیر الهی نمیرسد این نگرش ملا صدرا یک قاعده امیغ فلسفی ساعتها در و کلاس میخواد ولی من در حد فشردهی که اشاره کنم و نوع مستمعین ما این مطالب میتونه براشون روشنگر باشه ولی گرچه توضیح زیادی برای عمقش میخواد یک قاعده است در حکمت حکم به این استناد میکنند پایه بسیاری از مطالب تحت عنوان قاعده امکان اشرف. خیلی حرفا در اینجا زده شده. ایشون در اسفار اربعه که دیشب اسم بردم جلد پنج صفحه سی و, چهل و دو در رابطه با این قاعده اشرف و ارتباطش با این بحث اجتماعی و اونی که قرار قوانین برای جوامع بشری وز کند ببینید چه میگه با توجه به قاعده امکان اشرف در تمام مراحل وجود لازم است ممکنه اشرف بر ممکنه اخص مقدم باشد یه قاعده عقلیه ما وقتی اشرف داریم و اخس داریم همیشه اشرف باید مقدم بر اخس باشه چه در واقعیات عالم چه در اعتباریات عالم واقعیات و اعتباریات رو قبلا توضیح دادم در عالم واقعیات حرم هستی با نگرش حکمت متعالیه ملا صدرایی حرم هستی وقتی در رأس حرم هستی ذات اقدس الهی قرار می گیرد که او هیچ چیزی با او قابل مقایسه نیست اشرف به تمام معنا هیچ چیزی با او قابل مقایسه نیست میاد مادون ذات اقدس الهی اخص نسبت به اون اشرف هرچه مقام قرب به الله بیشتر باشه این نسبت به ما دونش اشرف است، نسبت به ما فوقش اخص است، و لذا آنانی که در مقام قرب الهی در قوس سعود که دیشب اشاره کردم به بالاترین حد قرب حق رسیدن میشن اشرف ببینید ما در فرهنگ دینی میگیم فلسفه ای عبادت و بندگی قرب حق است قرآن هم بیان کرده ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون عبادت برای این است که قربتن الالله بشه اگر عملی به قصد قرب الهی صورت نپذیرد عبادت نیست پس اگر عبادت برای قرب است ما خلقت الجن الانس الا لیعبودون پس اونهایی که ابدن مغربن این قرب قرب مقامی در این قوس سعود است وگرنه خدا که مکان نداره به او نزدیک بشیم خدا که زمان نداره به زمان خدا نزدیک بشیم این در این قوس سعود به مقامات اشرف نزدیک شده است. لذا چه در مراحل وجود وجود جبروت بالاتر از وجود ملکوت است وجود ملکوت بالاتر از وجود عالم ملک است به همین جهت از بالا به پایین از اشرف به اخس از پایین به بالا از اخس به اشرف این یک واقعیت عقلی در عالم است هم در واقعیات هم در اعتباریات شما در اعتباریات هم بیاید در این عالم وزمی کنید میگید کسی برود سر کلاس دکترا به دانشجویای دکترا تعلیم بدهد اشرف از اون شاگردها باشد یا اخص از اون شاگردها اگر قرار شد اخص از اون شاگرد باشه این نظام نظام ضد اقلی هست یا نیست این لوس کردن حتی اون شاگردان هست یا نیست در همه امور همین طوره لذا با توجه به قاعده امکان اشرف در تمام مراحل وجود لازم است ممکنه اشرف بر ممکنه اخص مقدم باشد بنابراین هرگاه ممکنه اخصی وجود داشته باشد باید مقدم بر آن ممکنه اشرف موجود شده باشد افاظه وجود و ریزش فیض به طور سلسله ای از اشرف به اخس است چرا که ترتیب سلسله وجود وجود صادر شده از باری همواره از اشرف به اخس و از اعلی به ادناس اساسا ادنا و انقص موجود نمی‌شود مگر به سبب اعلی و اکمل و این سببیت و تقدم ذاتی و تبعی است بسیار حرف عمیقی است فشردش در همین حده که من در یک امر اعتباری براتون مثال زدم هم در واقعی ایشون در حرم وجود مطرح میکنن هم در حرم اعتباریات میتونه اینجوری باشه آقا یه زمان است بند پنجا تا دانشجوی دوره دکترای فیزیک و سر کلاس نشوندم اینا نسبت به دوره فوق لیسانس میشن اشرف نسبت به دوره لیسانس میشن اشرف اما نسبت به کسی که قرار اینا رو بیاره در حد تحصیلات دکترا قرار بده میشن اخص اگر اشرف از این اخص با اینها کار نکنه اینها در حد این اخص میمونن یا نه حالا اگر ما اشرف داشتیم اخص فرستادیم سر کلاسشون این خیانت هست یا نیست در نگرش عقلی اغلای عالم میگن شما خدا و اونی که در ارتباط با خداست اشرف از ماسوالله مقیه ممکنات ماسوالله میدانید یا نمیدانید اگر وحی را قبول ندارید اول بیایم اثبات کنیم اگر قبول دارید با بودن اشرف نوبت به اخص نمیرسد این خیانت به بشریت است و این باعث شده که انبیا شناخته نشودند امیرالمؤمنین علیه و السلام یک عبارتی در نهج البلاغه دارند تو این زمینه عجیب تا مغز استخونه انسان رو به حرکت و درد وامیداره. داره چه میفرماد لا یغاس بنا احد چی با ما مقایسه میکنید ما به جای دیگه مرتبطیم ما از کانال دیگه سیراب میشیم به ما اون قدرت یزال الهی میفهماند همون گونه که پیغمبر اگر یک بشر است انما انا بشرون مثل اما یوها الیه در اثر یوها الیه است که معجزه میکند در اثر یوها الیه است که اشتباه میکند. در اثر یوها الیه است که حق بایت و نباید با اوست در اثر یوها الیه است که اشرف میشود وقت من این وحی رو بیارم در حدی که آقا عقول ما در این زمینه شاید خودش بیاد کمبودای وحی را برای شما جبران کند حالا بیایم سراغ عقول ما دو نمونه بذارید از غربیا بگم یک کتاب جامعه مدنی و دولت نوشته یکی از جامعه شناسان مشهور اروپا ترجمه فریدون فاطمی صفحه هشتاد جنبش روشنگری و روشنفکری به جای خداوند عقل و طبیعت را اصل هدایت کننده نظام اخلاقی و اجتماعی و سیاسی قلمداد کرده و به جای وحی الهی تحقیق علمی را منشع حقیقت دانسته حالا مفصله تو همین تیکه وحیو بذاریم کنار یه جنبشی پیدا شده بشر یه حرکتی کرده یه رشدایی براش پیدا شده اومده گفته که یه جامعه شناس اروپایی نوشته حالا دیگه وحیو بذاریم کنار حالا بیم چی کار کنیم آقا علم خودمون تجربه خودمون مطالعات خودمون خب حالا میم سراغ مطالعات خودمون میبینیم در کتاب حابز که 1679 میلادی فوت کرده در کتاب خداوندان اندیشه سیاسی جلد دو صفحه 127 مهمترین اثر فلسفه سیاسیش که مشهوره در تاریخ فلسفه میگه تنها و تنها حالا بشر قرار فکر کنه این یه فکرشه تنها و تنها یک چیز است که میتواند آن شهوات را به زیر قید آورد حرفی که ابن سینا زد قرار بشر اجتماع باشه در اجتماع معاملات و ارتباطات داریم و تو این معاملات و ارتباطات ممکن شهوت پول شهوت مقام شهوت ریاست شهوت خودخواهی من گل کنه به شما زور بگم ببخشید شهوت شما گل کنه به من زور بگید به جون هم دیگه بیفتیم پس قانون میخواد نظام میخواد این قانون نظام برای که بخواد کنترل کنه ایشون چی میگه میگه تنها و تنها یک چیز است که میتواند اون شهوت را به زیر قید آورد و آن مسلما عقل نیست بلکه چیزی است که اون شهوات قادر به درکش هستند و آن زور است خوب دقت کنیم شهوت و عقل این الان در درون من بعد بیایم تو بیرون جامعه آقا در درون همه ما هم شهوت هم عقله چقدر اتفاق افتاده در عمر ما که عقل ما شکست شهوت رو خورده شهوت بر عقل غلبه کرده شده یا نه همون حدیث معروف امیر المؤمنین علیه السلام ان الله تبارک و تعالی ركب الملائکه عقلا بلا شهوه و رکب البهایم بلا عقل و رکب فی بنی آدم کلته ما فمن غلب عقله شهوته بها و خیر من الملائکه و من غلب شهوته عقله بها و شر من البهایم مولوی ترجمه کردین رو در حدیث آمد که یزدان مجید خلق عالم را سه آفرید یک گروه را جمله علم دین بود او فرشته و نداند جز سجود یک گروه دیگر از دانش تهی همچو حیوان از علف در فربهی او نبیند جز که استبل و علف از شقاوت غافل است و بس شرف وان دیگر آدمیزاد و بشر از فرشته نیمی و نیمی زخر نیمه خود مایل سفلی بوبد نیم دیگر مائل علوی بوبد دوگانه در میدان نبرد تا کدامین غالب آید در نبرد عقل اگر غالب شود پس شد فزون از فرشته اون بشر در آزمون شهوت رو غالب شود پس کمتر است اون بشر دان از بهائم کمتر است قبول شهوت عقل در درون من چقدر مواردی رو ما میفهمیم شهوت نمیذاره فهممون رو عمل کنیم میشه یا نه و چقدر مواردی که نمیفهمیم نوبت به شهوت نمیرسه و عملا میکنیم بر اساس نفهمی میکنیم. کنیم میره فندرسکی استاد مل صدرا در اون قصیده معروف چرخ با این اختران نقض و خوش و زیباستی صورتی در زیر دارد اون چه در بالاستی صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا همی با اصل خود یکتاستی تا, تا میرسه به اینجا عقل کشتی. آرزو گرداب و دانش بادبان حق تعالی ساحل و عالم همه دریاستی عقل و تشبیه کرده به یک کشتی این جامعه رو تشبیه کرده به یک دریای پرتلاتم با این عقل که به منزله کشتی است در این دریای پرتلاتوم میخوایم به ساحل نجات برسیم. ساحل دریا. اما وقتی کشتی عقل در این دریای پرتلاتوم به سوی ساحل نجات میخواد بره یک گردابهای های حولناکی کشتی رو غرق میکنه. اون چیه؟ هوای نفس و شهوات عقل کشتی آرزو امیال هواها شهوات گرداب عقل کشتی آرزو گرداب و دانش بادبان حق تعالی ساحل و عالم همه دریاستی چند تا کشتی توانسته از این گرداب ها نجات بیابد و به ساحل نجات برسد حالا تو زندگی فردیت بعد بریم تو زندگی اجتماعی این حرف تا اینجا قبوله ولی آیا این به عنوان یک متفکر ترح ارائه کرده میگه عقل حریف شهوت نمیشه زور باید باشه حریف شهوت بشه پس نظام اجتماعی رو بر مبنای زور و استبداد و قلدری قرار بدیم کم کم شکل مکیابلی پیدا کرد فیلسوف قرن 18 آلمان نیچه میگه من به دنیا اومده هم تا لذت ببرم هرچه بیشتر بهتر اون چه مانع این لذت است بد است ولو راستی و صداقت و فضیلت و اون چه این لذت جویی مرا تامین میکند خوب است ولو کشتن هزاران انسان دیگر بعد خودش ادامه میده میگه حالا اگر کسی به من بگه که آقا تو میخوای لذت ببری میگه لازم شد دیگرانو میکشم تا خودم لذت ببرم خب دیگری هم میگه تو رو میکشم من لذت ببرم پس چی میشه نظام اجتماعی با حق تقدم با اونه که قوی تره برو قوی شد که در نظام طبیعت ضعیف با مال هست. نظام مکیابلی این یه بود رسو که دیشب یه مطلبی از او برای شما خوندم اجازه بدید در همون کتاب قراردادهای اجتماعیش ترجمه غلامحسین حسین زاده مطلبی که دیشب یا پریشب گفتم صفحه دیشب گفتم 64 بود حالا صفحه 36ش یه مطلبی میگه بر مبنای اون مجبور شده اون حرفو در صفحه 64 بزنه خوب دقت کنی نظم اجتماعی اینکه جامعه ما یه نظام داشته باشه نظام چیه هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره. قلدوری نباشه، زور نباشه، بی انصافی نباشه، بی ادالتی نباشه. یه جامعه خوب سالمی داشته باشیم. حق مقدسیست. میگه این حق و خیلی هم مقدسه. براش احترام قائلیم. که پایه و اساس تمام حقوق محسوب می شود. اینم درست. چرا که تمام افراد بشر آزاد و مساوی خلق شدن و هیچیک از آنها بر دیگران برتری نداشته حق ندارد بر هم آن خود مسلط شود و زور ایجاد هیچ حقی نمی کند زدو چرا زور؟ ما هم انسانیم خب پس چه بکنیم؟ میگه قراردادهای اجتماعی داشته باشیم خب قراردادهای اجتماعی رو با کی؟ بعد خودش این صفحه 36 اومد تو صفحه 64 تو صفحه 64 چی گفت؟ برای وضع قوانینی که به درد ملل بخورد یک عقل کل لازم است که شکست شهوات رو نخورد یعنی داره به او جواب میده اون عقل کلی که شکست شهوات رو نخورد منافش و منافعی ما مشترک نباشه و تحت تاثیر قرار نگیره غیر از خدا کیه؟ خب الان ما اینجا من الان وارد بقیه بشم وقت اجازه نمیده چشمم به ساعته اجازه بدید یه دتیجه بکنم خب آقای روسو به عنوان کسی که اون حرفهام دیده مثل سوربون فرانسه به مبانی حقوقی اون مباهات میکنه کتاب قراردادهای اجتماعیش هم خیلی حرف داره میزنه اونی که میگه با قلدری جامعه رو کنترل کنیم حرفای او رم دیده اونی که میگه بیایم بر مبنای تفکر فلسفی و ارفانی جامعه رو اداره کنیم اونم دیده بعد میاد با عنوان یک متفکری که رو مسائل اجتماعی جامعه شناسی قراردادهای اجتماعی میخواد نظر بده میگه انسان مخترم با زور و قلدری که نمیشه باید انسان رو بر مبنای قوانین و مقررات یه نظامی قرار بدیم روی این قوانین و مقررات و نظام جامعه به سوی تکامل حرکت کنه تا اینجاش حرف بسیار خوب و قشنگیه اما خودشم به این نتیجه رسید دو اصل اینجا لازمه او البته رو گفته ما در اسلام دوبامیشم داریم از این بیشتر داریم اولی که او گفته چیه اونی که قرار این قوانین را وز کند باید عقل کل باشد خب اینو ما در دنیا اسلام داریم میگیم این اله حکم الا لله با همه حرفایی که زدیم که بعد انشالله عرض میکنم او این حکم را از طریق کی به ما میگه؟ پیغمبری که حق بودنش با معجزه اثبات شود خب دوم مجریش که باشد؟ اینو دیگه او توجه نکرده ولی ما تو اسلام داریم که عرض خواهم کرد و لذا این درکنی که پیغمبر همیشه بهش اشاره میکرده، بشر بعد از غرنها داره بهش میرسه. یکی وضع قوانین میگه کتاب الله این کتاب اومده قوانین الهی رو براتون بیان کنه که انشالله فردا شب این بحثو میکنم. عقل در ارتباط با وحی از این کتاب قوانین لازم بشر را چگونه میتواند استنباط کند رابطه عقل با وحی که اوج وحی میشه کتاب خدا انشالله اینو فردا شب خواهم کرد به لطف الهی اما اینجا را دقت بفرمایید میگه کتاب الله اما چرا در کنارش میگه و اثرتی؟ یعنی شما اگر الان یک کلاس تشکیل دادید تنها جزبه درسی کافی نیست تنها متن آموزشی برای دانشمند شدن دانشجویان تون کفاف نمیدهد. باید استاد لایق هم سر کلاس بره و انقدر این استاد لایق مهمه که حفظ اون کتاب نشر اون کتاب تبیین اون کتاب تعلیم اون کتاب توضیح اون کتاب منوط به این استاده لذا از صدر اسلام اینجوری اومدن جلو گفتن کتاب بله امام نه حسبونا کتاب الله این یه گام بود کم کم اومدن جلو گفتن کتابم نه اقل ما پس چی باقی موند؟ بعد میگیم هدف انبیا چرا تحقق نیافت خب کتاب که خواب پیغمبر کاری نمیتونه بکنه مواردی براتون میخونم که آقا دیگه عقل جمعی باید جای کتاب رو بگیره اینن این حرف زده شده امامم که مجریه اصلی پیغمبر فرمودن اگر قرار قوانین الهی در جامعه تحقق بیابد باید به وسیله اون خلفای الهی باشه اونم که از صدر اسلام گفتن کنار بزنید خواه امام روز آشورا میاد میگه و این فرمایشاتی که این شباه همش سرلوهه صحبت ماست انا کتاب الله و سنت نبیه. حضیرش چگونه است؟ حضیرش چگونه است؟ سنگ میزنن پذیرش چگونه است؟ سرشو از بدن جدا میکنن حضیرش چگونه هاشم یک یکی شهید میکنند پذیرش چگونه است؟ خیمه‌هاشون هم آتش میزنیم. پذیرش چگونه است؟ ابدان متهرشونم هم اسوار و سم تازه میزنیم به اونا میتازونیم که اینا رو به کلی آثارشون اگه میشه محو کنیم. تازه به اینم اکتفا نمیکنیم. بازموندهگانشون رو اسیر میکنیم، ترور شخصیت کنیم، روحیه ضعفی در اونها ایجاد کنیم. یک قدرت سربلند کردن نداشته باشن این حرفا رو دوباره بزنن قافل از اینکه یه سه سالش تو شام شما رو رسوا میکنه یه شش ماهش رو دست علی اصقر کاری کرده که اون مستشرق آلمانی در کتابش میگه من از شهادت علی اصقر فهمیدم حسین کیست و یزید کیست و نشونم داده شد که حالا بعد عرض میکنم حالا برگردیم خب من یه جنبندی بکنم چه نتیجه گرفتم از نظر بروندینی فلاسفه جامعه شناسان حقوقدانان یه نمونه ای رو گفتم وگرنه اگر سی شب با هم بحث کنیم فقط از این نمونه ها رو من از لاپلای این کتابا براتون در بیارم از قرن بیستم، قرن 19 هم، قرن 18 هم، قرن 17 هم، قرن 16 میلادی این چهار قرن سی شب شاید بحث نیاز داشته باشه ولی مش نمونه خرواری این مقدار کافی باشه که چی عرض کردم آقا با نگرش فلسفی با نگرش حقوقی با نگرش جامعه شناسی عرفانی هم که یک بحثی داره انقدر این عمیقه انقدر این عمیقه که اگر حال و فرصت و زمان باشه این آدم بشکافه اصلا نگرش به هستی عوض میشه. نگرش به عالم و چگونه بودنه در این عالم، یک فرمایشی مولا دارن امیر المومنی علیه السلام فرمودن رحم الله و درود خدا رحمت خدا بر اون کسی باد اله بداند، من و فی عین و الا عین از کجاست در کجاست به سوی کجاست با یه مثال ساده عرض کنم مقدمه این حرف بتونم توضیح بدم آقا بنده رو فرض کنید دانشگاه تو کنکور اعلام کرد پذیرفتیم بیا دانشگاه ثبت نام کردم وارد دانشگاه شدم کجام من میبینم یه سالن غذاخوری خیلی خوبی داره. صبح تا شب توی سالون سالن غذا میخورم آدم میزنم. این ورشم یه باشگاه بدنسازی داره. میرم تو سالن تربیت بدنی دانشگاهی ورزش میکنم. اون طرفشم یه زمین فوتبالی داره میرم فوتبال میکنم دزدی نکردم. دروغ نگفتم. مردم آزاری نکردم. خیانتی ننمودم. ولی بعد از مدتی دانشگاه منو اخراج میکنه یا نه میگه برو بیرون چرا؟ تو هماهنگ با نظام این دانشگاه نبودی. قرار اونی که میاد اینجا چی کار کنه این واحدا رو پاس کنه معدلش هم انقدر باشه اگر این تعداد واحدو نتونست در این فاصله زمانی پاس کنه و اگر این معدل نتونست بیاره برو بیرون آقا جهان یه دانشگاهیست خدای این جهان که ما رو واردین جهان کرده قرار ما با نظام این جهان آشنا بشیم و خودمون رو با نظام این جهان وفق بدیم تا نمره قبولی رو به ما بدن و ما رو به اونجایی که قرار قرار بگیریم قرار بدن وگرنه ما رو میرانن بیرون بیرون رندنشون چگونه است؟ اولا اکه کل انعام بله هم ازل اینا کیانن؟ حالا با این مقدمه دقت کنید ملا محسن فیض کاشانیم کلماتون مکنونه من علوم اهل حکمت المعروفه صفحه 119 من ترجمهشو چند خط براتون میخونم خداوند در آینه دل انسان کامل همه انسان ها دل دارند دل همه انسان ها به منزله آینه است که این آینه دو تا نکته براش مطرحه یک آینه زنگار نداشته باشد صاف و سیغلی باشد دو در جهتی که قرار قرار بگیرد تا اونی که قرار در اون منعکس بشه منعکس بشه حالا اگر بنده این رو آینه گرفتم یک اونقدر زنگار دارد که به هر طرف بگیرم هیچی در این منعکس نمیشه اول زنگاراش رو پاک میکنم شستشو میدم آینه صاف سیغلی ولی منظورم اینه که این قسمت حسینیه توش بیفته من به این قسمت گرفتم میگن چیکار داری میکنی؟ باید آینه رو اینور بگیری دل من و شما مثل آینه است تزکیه نفس صفای باطن از آلودگی ها دور بودن اون سلامتی نفس ایجاد کردن این آینه را به گونهای قرار میدهد چشم دل باز می‌شود، چشم دل باز شد چشم دل باز کن تا که جان بینی و آنچه نادیدنی است آن بینی لذا آنانی که چشم دلشون باز می شود باد می بینن که به صورت تجربی در این عالمم گاهی با این زربل مثالها می گویم آن چرا جوان دراینه نبیند پیر در خشت خام یه اشاره است. به همین معنا آن چرا که با کلی زحمت و خون دل قرار انسان ها بیابند او با یک دل پاک که ابتدا پاک شده میتونه بگیره دوم به طرف عالم حقائق میگیرد عالم حقایق رأسش حق محض خداست سنوریهم آیاتنا فلافاقه و فی انفسهم حتی یتبین لهم انهال حق سوره فسلت آیه پنجه و چهار دل اگر آینه باشد زنگار ها زدوده شده باشد به طرف حق گرفته باشد حق حقائق را بر این دل میتاباند همونگونه که پیامبر فرمود من اخلص لله اربعین سباها جرت ینابی الحکمه من قلبهی الالسانه این چه دشنهای جوشان حقیقت و حکمت را از کانال این دل که بر مبنای آینه ای گرفته منعکس می کند. اما حالا انسان کامل همونی که معجزه داره همونی که از طرف خداست همونی که خلیفه رسول اللهست آینه دلش چیه؟ افاظه چگونه است؟ انعکاس چگونه است؟ ولی وقتی این آینه را بشکنند نه اینکه ذات آینه بشکنه اونایی که قرار استفاده ای از آینه بکنن آینه چون ایبتو بن مودراس خود شکن آینه شکستن خطاست حالا دقت کنید ایشون ببینید عجب خداوند در آینه دل انسان کامل که خلیفه اوست انی جاعلون فلارزه خلیفه تجلی می کند و عکس انوار تجلیات از آینه دل او بر عالم می می‌گردد و به وصول آن فیض باقی می‌ماند و تا این انسان کامل در عالم باقی است استمرار و فیضان تجلیات باقی می‌ماند پس مادام که انسان کامل در دنیا باشد عالم محفوظ و خزائن الهی مضبوط و چون از این عالم منتقل شود و مقیم آخرت گردد دیگر در افراد انسان کسی نباشد که متصف به کمالات الهی شود تا جانشین او گردد حق تعالی او را خزانهدار خود گرداند خداوند هر را در این دنیا از کمالات و معانی به خزائن اخروی ملحق میکند و کار خزانداری به آخرت منتقل می شود عجب حرفی. یعنی بعد از ظهور ماماس السلام قیامت برپا میشه. دلیلش اینه ولی تا قبل از ظهور حضرت هنوز انسان کامل تو این عالمه هنوز داره از اونجا به اون قلب میاد از اون قلب داره به دیگران میرسه. ولی کدوم دیگران؟ دیگرانی که بیان بگن ما خودمون عقل خودمون اونه میزاریم کنار آقا الان خیلی ساده ارز میکنم دیگه سریع فرصت نیست ببینید من گفتم اشرف اخص یه قاعده عقلی جالب الان این استاد اشرف فیزیک اومدی تو کلاس هرچی داره رو تخته می نمیسه. هر هرچی داره با این کامپیوترش و با این تو کلاس برای من منعکس میکنه من اصلا پشت به او کردم رو به یه فرد دیگری که اصلا عخص نسبت به اون اشرف قابل مقایسه نیست این فریاد نداره این درد بشره بشر با وحی داره اینجوری عمل میکنه بشر با خدا داره اینجوری عمل میکنه آقا تا بیدار نشن تا خدایی نشن تا توجه و های وحی نکنن تا در زندگی ما وحی عرضششو نشون نده کره زمین همینه که همینه بیتعارف با عدله یا متخن عقلی و نقلی میشه ادامه داد ولی بشر باید بیدار بشه نسبت بین است حالا اینجا یک جنبندی بکنم تحتیل یک انسان در زندگی فردی بحثی که این چند شب کردیم؟ گرفتار جهل و هوای نفس هست یا نیست. لذا نیازمند به یک عاملی است که هم جهلشو رو برطرف کنه. هم همقلبه بر هوای نفسش رو براش ایجاد کنه. همینی که تو درون گفتم شهوت عقل. خیلی از ما انسان ها نمیتونیم هم تعقل خیلی خوب بکنیم. هم اگر تعقل خوبی هم کردیم چقدر امکان داره که شهوت منو بر عقلمون غلبه ندیم حالا تو نظام اجتماعی شد این شدیدتر میشه چون تصادم و آرا پیش میاد تزاد منافع پیش میاد منیت ها گل میکنه انا ربکم الاعلا گل میکنه انا رجلون گل میکنه این انا انا انانیت بیچارگی های تو نظام اجتماعی درست میکنه حالا میام تو نظام اجتماعی همین مشکل تو نظام اجتماعی است دو تا یکی درک دقیق همه مسائل در نظام اجتماعی که وضع قوانین شود با این نمونه هایی که این دو شب براتون ارش کردم کدوم بشر جرئت کرده بگه ما همه چیزو فهمیدیم هم در علم هم در فلسفه، در علم، انشتین رو تو قرن بیستون خدای علم لقب ندادن؟ دیگه انشتینه دیگه چی میگه؟ این عبارت انشتین تو کتاب خلاصه نظریه نسبی انشتین شرحالی از خودش نوشته بخونید؟ میگه من تصورم این است، اگر حقیقت بر بالای پشتبامی باشد، که نردبان هزار پلهای لازم باشد که بالا بریم ما فعلا پامون رو پله اول گذاشتیم یه چیزکی فهمیدیم و این بیان معروفی که حکما داشتن ابن سینا هم هزار سال قبل گفت رسید دانش من به دنجا که بدانم همین دانم لورد عویبوری اروپایی هم میگه من دانشم در مقابل مشهولات مثل قطر دایره است در مقابل پیرامون هرچه قطر دایره بیشتر بشه به نسبتی پیرامونش افزایش میابه لذا یکی از تعابیره که در تعریف علم به صورت اصطلاحی در قرن بیستون به کار بردن و تعریف درستی هم هست اینه علم نیست جز اون که به ما بفهماند چقدر مشهول داریم یه استاد بر جسته فیزیک میدونه چقدر مطولات فیزیکی هست بنده که فیزیک نمیدونم به من بگن تو دنیای فیزیک چقدر مطولات رو میگم چی میدونم می من چقدر شو بلدم تا مطولات شو بدونم یه استاد کارکرده کرده استخوان خورد کرده تو مسائل عقلی فلسفی میفهمد بشر از نظر شناخت حقیقت چه مشکلاتی داره ولی زایی عرفا رو میزنه اینا واقعیات بشره تو مرحله فهم تو مرحله هوای نفس هم که وقتی به نظام اجتماعی میرسه تعصب گروهی تعصب های جناهی حزبی قبیله ای،, ای در طول تاریخ چه کرده؟ خب اینجا یه سوال پیش میاد خدا هست یا نیست؟ اگه خدا نیست که همینه دیگه چیکارش کنیم؟ اما اگه خدا هست آقا یه مثال یه شب زدم من یه باق تحسیس میکنم چهار تا درخت سیب توش میکارم بعد از تحسیس رهاش کنم نه آبیاری نه سنباشی نه کود دادن نه هیچی چهار روز بعدش هم خشک میشه اغلای عالم به من میگه چه کاری بود تو کردی حالا خداوند در قرآن کریم در این رابطه چی میفرماید سوره مبارکه زمر آیه 62 63 64 65 66 سری رد میشم الله خالق و کل شعی بلا همه چیزو او خلق کرده و هو علا کل شیئن وکیل عجیبه ما در بحث توحید یه توحید خالقیت داریم یه توحید در ربوبیت توحید خالقیت چیه؟ خالق فقط خداست اگر شما برای غیر خدا قدرت خلاقیت قائل بشید شرکه و اگر عزتی ایسای مسیح علیه السلام طبق آیه قرآن کریم می انی من میافرینم از خاک پرنده در او میدمم زنده میشه ولی فوری بعدش میگه به ازن الله خدا اجازه داده من قدرتی قدرتی این همش از اوست این همه آوازه ها از شه بابد گرچه از حلقوم عبدالله بابد خب پس یک توحید خالقی دو توحید ربوبیت مربی تربیت کننده دهنده کل مخلوقات رب عالمین الحمدلله رب العالمين اون که رب کله این آیه شریف هم توحید خالقیت رو داره میگه هم توحید ربوبیت رو توحید خالقیت الله خالق و کل شی همه چیز او آفریده و هو علی کل شی وکیل بر هر چیزی او وکیله یعنی چی یعنی حافظه یعنی مدبره یعنی رهاش نکرده اینا رو تحت پوششه خودش گرفته حالا اونی که وکیل بر کل شیئی که خالقشه آیه بعدی السماوات والارض والذین كفروا با آیات الله که هم الخاسرون تمام کلید آسمان و زمین کنایه از هرچی هست و هرچی هست لهو مال اوست والذین کفرو با آیات الله اونایی که این قدرت ها را این عظمت را این نشانی ها را کافرند اولایی که همون خاصرون اینا خیلی بیچاره شدن قول حالا اینجا ببینید قول شون خالق کل شیعه مدبر کل شیعه وکیل کل شیعه همه چی در قبضه قدرت اوست اونایی که کفران میبرزن زرر کردند، پس حالا پیغمبر با توجه با اون دعای آیه، قول بگو اف غیر الله تعمرنی اعبد أیها الجاهلون غیر این خدا را تابع بشم امر و بپذیرم ای جاهلین یعنی علم دارید معرفت دارید اشرف و أخص و با بودن اشرف پس معلومه نمیشنستی در اشرف کیه؟ اونی که کل هستی در ید قدرت اوست چطور نظام او رو نپذیرم. خب برم ببینم چگونه کتاب نازل کرده تو کتاب چی گفته؟ نحوه برداشت از کتاب چی گفته؟ برم اونجا کار کنم تا بتونم دقیق اونی که او میخواد در بیارم بل افقیر الله تعمرونی اعبد ایوه الجاهلون آیه بعدی و لقد او هیه الیکا و الذين من قبل به تو وحی شده ای پیغمبر به قبلی ها هم این وحی شده لئن اشرکتا لیهبطن اعمالوک ولتکونن من اگه شرک ببرید اینجا شرک در ربوبیت مطرحه برای خدا در باید و نوایتتون برای خودتون افرادی رو بیارید شرک است و اگه شرک ورزی اعمالتون پوچه هبت عمل یه معناش همینه میدوید به جایی نمیرسید آقا چقدر بشر در کره زمین تجربه کرده این مکتب اون مکتب این ایدئولوژی اون ایدئولوژی این نظام اون نظام هنوز بشر کره زمین بیچاره و بدبخته هنوز کشتار هنوز ظلم هنوز تبعیز هنوز استثمار هنوز استعمار هنوز خون ناحق به زمین ریخته شدن چه خبر بشر را در کره زمین که واقعا به قول بعضی جامعه شناسان حتی اروپایی که مقالاتی اخیرا نوشتن تو سایت ها موجوده میگن اصر ما را اصر جاهلیت بدانید اینا نتیجه ای این تفکرات باطل از خدا و دور شدنه لذا بعدش چی میگه بل الله فعبد و کن من شاکرین بله بله بله برو عبد خدا شو. برو شاکر شو لا این ازیدن نکن یکی از مشکلات اساسی که بشر متاسفانه به جای اینکه در زمینه تحقق هدف انبیا گام برداره زمینه رو برای فهم بهتر هدف انبیا ایجاد کنه در جدایی مردم از هدف انبیا کار کرده و این از صدر اسلام شروع شد از اون زمانی که دست بشر را از عوامل هدایتش جدا کنند اما خدا ول نمی کنه. خدا اسمام حجت میکنه همتون شنیدید وقتی ابی عبد الحسین علیه السلام از مکه خواست به سوی کربلا بیاد به سوی کوفه بیاد هر چی جلوشو گرفتن آقا اینا بیوفان اینا میکشن اینا چنينن فرمود همه رو میدونم آخری به بعضی از خسیسین اینو فرمود که بنده چند سال قبل یه ده شبی تو دهه محرم راجب همین مطلب بحث کردم که من جدم رو در خواب دیدم به من فرمود حسین اخرج ال العراق ان الله شاع ای راک خدا میخواد تو کشته ببینه یعنی خدا دوست نداره امام حسین زندگی کنه امام حسین تو این عالم بچه پرورش بده منظور چیه؟ خدا چی میخواد؟ خدا سعادت بشریت یعنی حسین من تکامل بشر رو میخوام برای تکامل بشر دین فرستادم حالا این بشر با دست خودش داره با دین من کاری میکنه که مثل تویی باید کشته بشی تا دین باقی بمانه من دو تا مثال اینجا عرض میکنم کنید یک یه انسانی بهش ظلم شده عذیت شده خیلی آزارش دادن حرف میزنه مینویسه بیان میکنه تو سایتش میذاره بعد میبینه نه تو یه وقت ممکنه بیاد توی یک بازاری توی یک روز شلوغی توی یک جمعی بیراهنش رو چاک بزنه بگه آی مردم کلافم به دادم برسید امام حسین بعد از 124 هزار پیغمبر این یقه چاک کردنش برای اینکه مردم وسه دیگه ببینید خدا چی گفته یکیش چی بود؟ شش ماهه رو رو دست گرفتن تعبیر دوم آقا یه درختی من اینجا کاشتم درخته داره خشک میشه این ظرف آب و پاش میریزم کافی نیست این ظرف آب و پاش میریزم کافی نیست این بر نگاه می‌کنم آب دیگه هست یا نه ان الله شان یراک قتیلا قرار جان بدید تا با جان دادن شما جامعه بیدار بشه ولی حالا اگر خون شش ماه هم لازمه اونم بذار بیارم بریزم لذا برخی شعرا خوب فهمیدن ببینید این شعر بخونم مقدمه يه. توسل امشب ما باشه روز عاشورا که روز داغ بود باغبان تنها میان باق بود باغ او گلهای رنگارنگ داشت با خزان بی جنگ داشت یورش باد خزان بیداد کرد کربلایش را حسین آباد کرد یوسف زهرا که از روز عله است با خدایش رشته میساق بست شد چو تنها اون امیر ارجمند همه رفته حالا حسین تنها شده با اینکه ناصرش گشتی بلند یه نگاهی به چپ یه نگاهی به راست حلم ناصر ینسرونی این بیان ابی عبدالله که صداش بلند شد سینه پرسوز و دلی صد پاره داشت کودک شش در گهواره داشت شیرخارش از آتش بیتاب بود لب در انتظار آب بود در کنار آب از جور یزید از اتش انگشت خود را میمکید باقبان تا بانک قربت ساز کرد نرگس شهلای خود را باز کرد ناله روحی به سوز و ساز داد با زبان کودکی آواز داد کی پدر از بی دم مزن وین سخن آتش بر این عالم مزن زان که من آماده جانبازیم کن تو امزا کن تو امضا سرخط سربازیم ای پدر آغوش خود را باز کن سوی میدان ازم رفتن ساز کن ای یگان قافل سالار عشق اسخرت را بر سر بازار عشق چون مرا بردی بگو با صد خروش گل فروشم گل فروشم گل فروش اون رو گره آورد یه سرواز دیگه منده برخی اهل دلا میگن من نقل قول میکنم حرف برام قابل پذیرشه میگن به نظر میرسه ما تو شهدای کربلا مظلومتر از علی اصغر نداشته باشیم چرا چون هر شهیدی وقتی به میدان آمد شمشیری زد فریادی زد سپری نیزهی، زرهی اینکه دستاشم تو قنداق بسته بود اینکه امکان دفاع نداشت ابی عبدالله که میدونه این بچه بچه‌ای آبم بهش بدن بازم میمیره ولی چیو می‌خواد نشون بده مردم ببینید اینایی که دم از دین میزنن کیان لغتی رو عرب داره به نام تلزی تلزی چیه میدونید ماهی رو وقتی از آب گرفتید وقتی در اثر بیابی خطر جانی داره اول میپره بالا میپره پایین در این حالت ماهی رو برگردونید تو آب زنده میمونه. اگر یه مقداری بیشتر فاصله افتاد از این پهلو برمیگرده به اون پهلو، از اون پهلو برمیگرده به این پهلو، در این حالت هم ماهی رو به آب برگردونید باز زنده میمونه نمیره نمیمیره. ولی وقتی ماهی از آب فاصلش زیاد شد دیگه کاملا توانش تموم شد، فقط لبش رو و بسته میکنه، دیگه قدرت حرکت نداره، در این حالت ماهی رو تو آب برگردونید بازم میمیره، عرب به این قضیه میگه تلزی، امام حسین علیه السلام طبق یک نقل، کودک شش ماهارا رو دست گرفت، آی مردم نمیبینید این بچه تلزی میکند؟ آب بهش بدید میمیره آبم بهش ندید میمیره اگه خیال میکنید من اینو بهانه کردم آب برا خودم بگیرم بیاین این بچه را ببرید سیرابش کنید برگردونید یه قاشق چای خوری به تعبیر من آب این بچه رو سیراب میکنه آیا آب دادن بچه ای که تلازی میکرد در اثر گرسنگی و تشنگی رمق نداشت سر رو گردن آویزون شده بود یه وقت ابی عبدالله دید این بچه دست و پا میزند بوش تا گوش سلوی علی اصغر را هرمله با تیر برید امام حسین دستش شاه زیر گلوی علی اصغر مشتی از خون این مظلوم را به آسمان پاشید ای خدا شاهد باش با چه مردمی مواجه هم حالا میخواد برگرد خیمگاه مادرش رباب منتظره جواب مادر رو چی بده حسین راش رو کچ کرد بنداغر و زیر عبا ولی رفت پشت خیمه ها یه وقت صدای ناله رباب میاد یبن از زهره حسین جان دمی صبر کن با خنجر این ماسه ها رو کنار زد این بچه شش ماه رو زیر ماسه ها به نان کنه دف کنه چرا؟ چون بعد از زر قراره با اسبها و سمهای تازه رو این عبدان بدوانند، بدن شش ماه تحمل ندارد ولی مگه ویل کردن. عصر یازدهم اومدن و سرها رو سوار کنن ببرن سرها رو به نیزه بزنن گفتن یه شش ماه هم بود کو گفتن حسین رفت پشت خیمه وقت برای کندن صرف نکردن با نیزه توی ماسه فرو کردن بچه یه شش را بیرون کشید.